خوشترز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساغی کجاست بو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به مویست حوش دار غم خار خیش باش غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جوی بار و می خوشگوار چیست مسور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند ما دل به اشوه‌ی که دهیم اختیار چیست راز درون پرده چه دانت فلک خموش؟ ای مدعی تو با پردار چیست؟ صحب و خطای بندگرش اعتبار نیست معنی اف و رحمت آمورزگار چیست؟ زاهد شراب کوسر و حافظ پیاله خواست تا در میان خواسته یک کردگار چیست؟